بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنظر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز ولا تمنه تستكثر ولربك فصبر سورة گرچه از نظر ترتیبی که اللہ مسیحوتی نوشته و در این مصاحف هست چهارمین سوره نوشتن چهارومین سوره که نازل شد اما بر اساس اون ترتیبی که ترتیب اصلی هست و از احادیث صحیح معلوم میشه دو دوهمی ای هست که بر آن حضرت صلی الله علیه و نازل شد و سوره مبارکه مزمل سے ومینش هست. ان حدیث من حدیث معروفی هست که دیروز هم به اون حدیث اشاره شد بعد از اینکه پنج آیه اول سوره علق اقرأ باسم ربکالذی خلق خلق الانسان من علق. این آیات بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شود ان حضرت تا مدتها ارتباطشون با وحی و با عالمی بالا بود وحی نمی آمد. تا اینکه سی سال گذشت. ان زمانی که وحی نیامد فترت الوحی سه سال هست سه سال گذشت بعد از سه سال رسول الله صلی الله علیه و وسلم روزی به غار رفته بودند و با معبود خودش خلوت کرده بود و وقتی که از اونجا داشت برمیگشت میفرمایند که من آمدم از کوه که پایین آمدم از غار که پایین آمدم صدای شنیدم و وقتی که این صدا را نگاه کردم به طرف صدا صدا از بالا می آمد دیدم که کرسی سندلی در بین آسمان و زمین نسب شده و همون ای که قبلا آمده بود جبرائیل امین همون فرشته بر روی اون کرسی نشسته و وقتی که من برای بار دوم ایشون را مشاهده کردم من ترسیدم لرزیدم دوان دوان تنتنت به خانه آمدم وقتی که خانه رسیدم اینجا به الكبرى رضی الله تعالی عنها فرمود آن عن حضرت که دسترونی دسترونی مرا بر من پتوی چادر چیزی بیاندازید لذا آن حضرت خوابیدند و سرشون را گذاشتند و میل بدنش از اون هیبتی و از اون تأثری که گرفته بودند تا اینکه فرشته همین جا آمد جبرائیل اینجا آمد و این آیات نازل شد یا ایوها المدثر قم فاندر و ربک فکبر و ثیابک فطهر که آیات را الله تلاوت میکنیم پس این سوره در واقع بر اساس این روایت و این حدیثی که خاندم و خدمت شما ارز کردم دومین دو سوره هست بعد سوره علق که پنج آیه اول سوره علق اولین آیاتی هستن که نازل شدند و این آیات دومین بار بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شد. اما ربط این سوره با سوره در سوره مزمل ما خاندیم که وردتل القرآن ترتیلا شما قرآن را با ترتیل شمرده شمرده با رعایت تجوید و تدبر و تفکر بخانید اکنون در سوره مدثر می فرماید که نه تنها خودتون قرآن را به بلکه قم فانذر برخیز بلند شو و به دیگران هم برسان به دیگران هم تبلیغ کن و به وسیله آیات قرآن مجید دیگران را انذار کن پس این مناسبت این تو سوره است ربط این تو سوره است که عموما بیان میشه یا ایها المدثر ای کسی که چادر به خود پیچیدی ای کسی که به خود پیچیدی معمولا لباس که انسان به تن می کند و چادری که به دور خودش می پیچوند بر دو قسم است یکی را میگن شعار و یکی را میگن دسار شعار به اون لباسی میگن که به انسان چسبیده به انسان متصل است بین شعار و بین بدن شما دیگه هیچ چی نیست؟ مثلا همین لباس‌های زیر و لباس‌های پایین که انسان استفاده می‌کند یا همین پیراهن را استفاده بکند بدون اینکه پایین لباسی باشد این شعار هست لباسی را میگن که بدن به بدن چسبیده از نظر زبان عربی دثار میگویند اون لباسی که بین اون و بین بدن شما چی هست فاصله هست مثلا وقتی که یک چادری دور خود پیچوندی و این چادر اون زمان لباس پیراهن دختهی مثل امروز نبود اون چادری که شما اطرافتون به اطراف بدنتون بدن می پیچونید و به بدنیتون چسبیده اون شعار هست یکی دیگه که برای گرم کردن بدنتون می پیچونید اون اسم دثار هست لذا آن حضرت صلى الله علیه غیر از این لباسی و غیر از اون چادری که همیشه به تنشون بودند غیر از اون لباس اضافی یا چادر اضافی یا کمبل و پتوی اضافی بر خودشون انداخته بودند چون که معلوم میشه احساس سرما میکردند و احساس لرزش میکردند لذا با همون اوصافی که داشتند الله عزوجل خطاب فرمودند یا ایوه المدثر ای کسی که چادر و پتورا به خود پیچوندی کم فاندر برخیز بلند شو و مردم را بترسند یعنی وقت خواب نیست وقت استراحت نیست فریزه تو و وظیفه تو از امروز شروع میشه بلند شو و قوم را از عذاب خدا بترسان قوم را به سوی توحید فرا بخوان به سوی یک تا زیرا که اگر نیاین به سوی توحید نیاین به ایمان و خدا اون وقت عذابی برای اونها منتظر هست قوم فاندر و ربک فکبر و ربک فکبر یعنی در انذار و ترسندن قوم عظمت و کبریایی و بزرگی رب را بیان کن و ربک فکبر بعضی از اهل تفسیر گفتند که عظم ربک من الشرک رب را از نسبت به شرک عظمت او را بیان کن یعنی چنان بزرگیش را بیان کن چنان عظمتش را بیان کن که هیچ مخلوقی با او برابر نباشد و خدای عزو جل واقعا عظیم هست واقعا کبیر هست الله اکبر معنیش اینه که خدای تعالی از همه بزرگتر هست از همه عظیمتر هست لذا و ربک فکبر ربت و بزرگی رب را عظمت ربت را بیان کن برای مردم تشریح کن و ثیابک فطحر و لباست را پاک بکن لباست را پاک بکن یعنی چه دو تا تفسیر بیان کردن دوتا مفهوم میتونه این آیه داشته باشه یکی اینکه به همین لباس ظاهری همین لباسی که ما شما بتن میکنیم لباست را پاک بکن چونکه عربها زیاد به پاکی توجه نمی کردند به لباس توجه نمی کردن لباس گاهی آلوده میشد گاهی ناپاک میشد لذا تو که از این به بعد قرار هست که عبادت پروردگار را بکنی طاعت و بندگی پروردگار را بکنی لذا از پاکی ظاهری هم اختیار کن و از نجاست ظاهری هم دوری کن همونطور که از شرک بنا از دوری بکنی از نجاست ظاهری هم دوری کن لباس را پاک کن لذا معلوم میشه که برای عبادت پروردگار انسان باید هم بدنش پاک باشه و هم لباسش پاک باشه بعضی این مفهوم را گرفتند اما بعضی دیگه گفتن و ربک فکبر این کنایه از اعمال هست ببخشید و ثیابک فطاهر کنایه از اعمال هست همون که اقائدت قلبت باید پاک باشه از آمیزش غیر الله همچنین هم عملت هم پاک باشه عمل چرا بدلیل اینکه همون که لباس هر جا همراه شما هست روز لباس به شماست شب به شماست در هزار با شما همراست در سفر با شما همراست همچنین عمل انسان هر جا با انسان همراست حتی در قبر و او همراست لذا کنایتاً به عمل چی گفته میشه لباس گفته میشه پس لباست را بکن یعنی اعمالت را پاک بکن ببین در اعمال تو آمیزش شرک نباشد در اعمال تو هیچ نوع خلطی و آمیزشی از غیر الله نباشد مثلا دست بستنت فقط برای خدا باشد قیامت فقط برای خدا باشد رکوعت سجدت فقط برای خدا باشد برای غیر الله نباشد و ثیابک فطهر بعضیها این معنا را گفتن و رج فهجور رج را رج به معنی اون چیزی که گند هست نجس هست مراد از اینجا چی هست بطه هستند عبادت غیر الله هست فحجر یعنی ترک کن فجتن بر رجس من الاغثان اون بطه که گند و نجس هستند از اونها دوری کنید پس و رجز فحجر عبادت غیر الله را بطه را ترک کن و بسوی بطه هرگز نرو ولا تمن تستکثر الله عزوجل می فرماید مننت نگذار تا زیاد زیاد بشمار زیاد مشمر یعنی چه این را چند مفهوم گفتن چند مراد گفتن یا تفسیر اول این که بر مردم مننت نگذار خدمت مردم نکن تا از مردم عوض بیشتری بگیری الان خدمت مردم دو نوع هست یکی خدمت مادی هست به کسی هدیه میدی، دی توقع که دو برابر بهت بده به کسی کمک می کنی توقع داری انتظار داری که سه برابر بهت بده این کار را نکن البته این مفهوم کمک مادی انجازیات مراد نیست منت گذاشتن به این معنا نیست دوم اینه که خدمت دینی نکن تستکثر تا بعدن برای خود جمع کنی طلب کسرت کردن یعنی برای خود جمع کردن یعنی به مردم چنان خدماتی چنان تبلیغی چنان درسی چنان تعلیمی دینی خدمت دینی که در عوض تستکتر طلب کسرت بکنی طلب زیادی بکنی که باز به تو مال بدن پول بدن حقوق بدن چنین کاری نکن یک مفهوم این ربیان فرمودند و گفتند که به مردم چنان خدمتی که بعدا توقع از مردم داشته باشی که در عوض این تبلیغت در عوض این خدمت دینیت مردم به تو پول بدهند چنین کاری نکن و بعضی گفتند حسن بسری رحمه الله این را گفته ولا تمنون یعنی عملی که میکنی نمازی که میکنی برای خدایت میکنی بر خدا منت نگذار که تا تکثر از خدا عوضش زیاد بگیری بعضی از ما همین طور هستیم درکت نماز میخوانیم انتظار داریم روز بعد دیگه بر ما رزق روزی خدا بریزه یعنی در عوض کارت در عوض عبادتت در عوض سجده و طاعت و بندگیت از خدای عزواجل باز انتظار داشته باشی که در عوضی اون به تو بده نه همین طور انسان از خدا بخواهد اما در مقابل اعمال در مقابل عبادت در مقابل سجده چنین کاری نکن که برای خدای از الا یاز بالله منت بگو که خدای من تو را دارم سجده میکنم من تو را عبادت میکنم همه مردم دارم بت را عبادت میکنند من تو را عبادت میکنم لذا تو به من مال زیاد بده نه چنین کاری نکون ولی ربک فاصبر لذا این خدمات را انجام بده مردم را از شرک دور بدار مردم را تبلیغ بکن برای مردم خدمت بکن و هر چی که در این راستا برایت میاد در این مسیر برایت میاد به خاطر ربت صبر کن شکیبا باش تحمل کن و البته این صبر چندی معنا داره یکی این که در قبال مسائبی که از طرف مردم مید فشارها و مشکلاتی که مرد از طرف مردم هست مخالفت هایی که با تو میکنن صبر کن ادامه بده، خسته نشو و دوم اینه که صبر کن یعنی استقامت کن اندرین را می خراشو می خراشو می خراش تا دم آخر لحظه غافل نباش تا آخرین نفسی که داری همین مسیر را ادامه بده مسیر ایمان را مسیر توحید را مسیر دعوت الی الحق را بگو هرچی تهدید می کنند هرچی که زهر چشم نشونت می دند نه ترس بلکه ولی ربکا فصبر سب کن استقامت کن چونکه انهایی که مزاحمت میکنند اونهایی که با تو مخالفت میکنند اونهایی که جلوگیر راه تو هستند روزی که برای انها برسد و انها گرفتار بشند هم دور نیست فاا نقر فیالنقور این تخویف اخروی هست تخویف برای همین کسانی که مزاهم راه تو هستند فاذا نقر فی وقتی که در ناقور بوغ زده میشه نقره یعنی فوت کرده میشه زده میشه بوق فی ناکور در اون ناقور یعنی سور اسرافیل وقتی که اسرافیل سورش را میزند فذالک یوم ایدن یومون عصیر اون روز روز سختی هست روز عصیری هست اون روز روز سختی هست علالکافرین غیر و عصیر به وجه برکافران آسان نیست اون روز روز سختی است سختی برای کیه برای کافران برای کسانی که منکر تو هستند و منکر مسیر تو هستند درنی و من خلقت وحیدا خداوند می فرماید بگذار مرا با اون کسی که من او را آفریدم وحیدا وحید مطلبش را عرض می‌کنم. اما یکی از اون کافرینی که مزاحم راه تو هست همیشه مانع کاری تو هست این فرد است که در این آیه اشاره شده این کیه ولید ابن مغیره بسیاری جاها که آیه برای فهم خودش نیاز به شان نزول دارد اونجا شان نزول بیان میکنیم تا آیه را بفهمید ولی آیه را منحصر به این فرد نکنید کسانی که امروز مانع دین خدا میشن کسانی که امروز معنی تبلیغ میشن کسانی که امروز با قرآن مخالفت میکنند و چیزهای ناروا و نامشروعی به قرآن نسبت میدهند هم امروز مصداق این آیه هستند خدا تهدید میکنه خدا میفرمه مرا بذارید با اونها که من به حسابشون برسن ذرنی و من خلقت وحیدن این ولید ابن مغیره قبلم خدمت شما گفتم که یکی از نظریه پردازان مشرکین بود رهبران فکری اونها بود کسی بود که از بقیه بظاهر آقل تر بود شیرین سخنتر بود و کار بود دنیا را گشته بود دنیا را دیده بود انسان وقتی که سفر میکند کند این سفرها و تجربهها خودش کلی علم هستند لذا سردی و گرمی تری و خشکی همه مسائل را دیده بود فرهنگای مختلف را از نزدیک لمس کرده بود او به گمان خودش گفت که من من میرم و مچ این فرد را که ادعای نبوت میکنند میگیرم من میتونم میدونم که این این کلام را از کجا آورده شما بذاری من باش رو برو بیشم اما وقتی که در محضر رسول الله رفت و گفت چی داری؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کلام پروردگار را خاند این و... ولید متغیر شد متأثر شد این نمیدونست چیکار بکنه آمد نشست و همیش فکر می کرد مردم گفتند که یک مجمعی بود یک جمعی بود نشسته بودند بعضی گفتند که محمد علیه الله مجنون هست گفت نگوید شما یک روزی حرکت آمیزی از ایشون دیدید یک روزی دیدید که حرکت خلاف عقل انجام بده چرا شما میگید دیگری گفت چون اصلش اینها با هم مشوره داشتن مردم داشتن متاثر میشدن از کلام وحی ابتدای اسلام هست مردم از قرآن متاثر میشدن و بیشتر بیمینها این از این بود که مکه مکرمه مرکز توحید بود حج بود مردم عرب ها از اطراف و اکناف به حج می آمدند خب اونا که می آمدند لابد با رسول الله ملاقات می کردند رسول الله اونها را دعوت می دادند و اینها می گفتند وقتی که عرب ها بیند اقوام مختلف قبایل مختلف بیند متاثر بشند ایمان بیارند اون وقت ما در خطر هستیم ای مردم این مردمی که من برای اینها چه توجیه داشته باشیم لذایی که گفت میگی مجنون ولید گف هرکه به شما نمیگه کدوم روز حرکت جنون آمیزی انجام داد کدوم حرکتش خلاف عقل بود که شما بهش میگیم مجنون دیگری گفت که خب به مردم بگیم شاعر این شاعری هست شعر می سرائید. و این شعرش در انسان تاثیر گذار است مثل بقیه شوارا گفت شما یک روز دیدید محمد شعر بگوید که اون را میگی شاعر هر کسی شما را تقزیم نمی کنند. از کی این شاعر بود کدوم شعر را سرود کدوم سابقه را درباره شعر دارد یکی گفت پس میگیم کازب دروغگو هست لا عزو بلله گفت آیا یک روزی حرف خلافی از محمد شما شنیدید که خلاف گفته باشد دیگری گفت پس میگیم کاهن کاهن یعنی کسی که اخبار غیب میده این با جنات سر داره کاهنی هست مثل بعضی از کاهن ها که این چنین اخباری میدن اینا حرفایشون درست نیسته ناراحت شد گفت آیا یک روزی چنین ادعایی از محمد دیدید شما اصلا پیشنهاداتشو به درد نمیخوره جلسه را ترک کرد اما یک جمله ای گفت که این جمله را تفاسیر نوشتند گفت که من این کلامی که از ایشون شنیدم این کلامش نبا شعر هم خانیداره نبا کهانات نبا دروغ نبا چیزی دیگر. والله لقد سمعت منه كلاما ما هو من كلام الانسان ولا من كلام الجن. سعند به من الزبان زبان ایشون کلامی شنیدم که اون کلام نه کلام انساس و نه کلام جن هست. له لحلاوا و عليه لطلوا این کلامش یک شیرینی خاصی دارد و یک شادابی خاصی دارد وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق بالا این کلامش مثل یک درخت میموانت که انواع میوه دارد پایینش آب زیادی از وقتی که ریشه درخت تو آب باشد دیگه مشخصه شاخ و برگش چه رشدی دارن چه میوه خوبی میده کلامش مثل او معلوم میشه و اینهو لیعلو ولا یعلا علی این بر هر کلامی میچربد غالب میشه و هیچ کلامی بر او غالب نمیشه و ما یقولو هازا بشر بشر, بشر مثلی نمیتونه حرف بزنه این کلام کلام بشر نیست این گفت و ناراحت شد و رفت آخر تمام ناراحت شدند همه سرداران که یعنی چه این ولید ابن مغیره هست این نظریه پرداز و مغز متفکر ما عرب ها هست این که مسلمان بشه بعدن کی میماند لذا ابو جهل دنبالش کرد رفت پشت سرش گفت که آخر تو میخوای چیکار بکنی تو مگه کم داری میدونست ابو جهل شیطان بود و شیطان رموز را خوب میداند لذا دست را گذاشت بر اون نبض غیرتش گفت تو منتظری که لقمه ای از طرف محمد یارانش ابوبکر به تو برسد تو منتظر چی هستی آخر او ناراحت شد گفت قسم به خدا شما میدونی من مال کم ندارم من سرمایه کم ندارم من نیاز لقمه خوش اونها ندارم نیستم ولی من هر چی فکر میکنم نمی نمیتونم توجیه بکنم آخر همین عصبیت عصبیت ایک چیزی است که انسان را محروم میکنه گاهی خدا نیاره عصبیت وقتی که میایت تعصب قومی و عصبیت نفسی انسان را به جهنم هم میبره بعضی اوقات هستند افرادی گرفتار این تعصب قومی میشن انسان هایی ربنا حق میکشند خون هایی را بنا حق میریزند می مسلمان هست نمازی هست پنج وقت مسجد میاد ولی گاهی گاهی دچار عصبیت میشه این عصبیت گمراه و بدبختش میکنه لذا گرفتار این عصبیت شد با خودش فکر کرد فکر کرد کسی که فکر میکنه چهرش مشخصه که مغمومه متفکره داره میاندیشه قرآن این را به تصویر کشیده آخر توجیهی که او آورد گفتنها توجیهی که میتونیم برای مردم بکنیم از اون تأثیری که از اسلام گرفته بود فاصله گرفت شما قبلا خاندید افرائیتالذی تولا و اعتا قلیلا و اکدا اون انسانی که پشت داد اما ابتدان اعتا قلیلا مقداری مغ... بطرف قرآن آمد و اکدا متوقف شد این مقداری آمد متاثر شده بود گفت این کلام بشر نیست این کلام جن نیست این کلامی هست که هیچ کلامی نت... نمیتونه بر این کلام فائق بشه آخر چی توجی کرد انهو فکر و قدر فکر کرد و سنجید و زد پاین و زد بالا آخر گفت ان هادا الا سحرون یعصر این جادوی بود این جادو که جادوی نقل شده از جاهای دیگه جادوی عجیبی جادوی پر تأثیری گویا توجی کرد و وانمود کرد که اگر من حالم دیگر گون شد اگر من هم متغیر شدم اثر چی بود؟ جادو بود لذا الله عز و جل از این متکبر بزرگ از این انسان سرکش متمرد اینجا یاد می کند الله می فرماید و ذرنی ومن خلقت وحیدا بغزار را که ومن خلقت وحیدا اون را که من آفریدم اورا وحیدا یعنی بتنهایی یعنی خدا میگوید یک یک ترکیبش و تفسیرش اینه که وحیدن حال هست از زمیر فایل خلقتو او را آفریدم من به تنهایی آفریدم کی بود در آفرینشی او نقشی داشت من خدا او را خلق کردم خالقش من هستم و تفسیر دوم و ترکیب دوم که این حال هست از زمیر مفعول که مقدر است خلقتو او را آفریدم در حالی که او تنها بود تک و تنها بود اون زمان لباس هم نداشت چه برسه این پارتی و این قوم و این فرزند و اولاد و خدم و حشم بیاد. اون روز نمیفته که من او را طوری آفریدم که تنها بود و بعضی میگویند که وحید لقب ولید بود ولید را میگفتن وحید می گفتند. وحید یعنی کسی که هم مثل و هم مانند نداره بین نذیر به بی اصطلاح یک ک میدان این به تمسخر گفته شد چون مردم او را می که این دومی دو نداره و ولید فردی هست که دومی دو نداره الله تعالی به همون طبق عقاد پوچی اونها بگه مرا بذارید با اون کسی که یک ک تازه هست هست منحصر به فرد است بذارید مرا با او. اون کسی که هیچی نداشت و جعلت له مال ممدودا من قرار دادم برای او مال بسیار زیادی بین مکه و طائف هزاران گوسفند و شتر و مال بود که اینها مال او و ولید بود انجا چوپان و شتربان و داشتن که خدمت شمی کهتن و بنین شهودا بذارید اون کسانی را که فرزندان حاضری دارد شهود یعنی فرزندانی که حاضر باشند همیشه به خدمت پدرند بعضی پدرها فرزند دارند فرزندانشون به دردشون هر کسی با زندگی خودش مشغوله یه آقای مثلا فرزندی داره خودش پیر شده افتاده تو شهری مثلا تو تهران هست پسرهایش دخترهاش یکی مهندس امریکا ای یکی دکتر فرانسه ای یکی دکتر فلان هر جب هر زندگی خودش را میکنه، این اینجا کسی نیست یک لیوان آب بهش بده این فرزند به چه دردی می لذا او فرزندانش این نبود و بنین شهود و فرزندانش همیش حاضر بودند بل یکی مسئولیت مالها را داره یکی مسئولیت کشاورزی را داره یکی مسئولیت تجارت را داره هر فرزندی یک کاری از کارها پدر را انجام میده این پدر دیگه نمیخاد از این نعمت بزرگتر میخواد. و بنیان شهود فرزندانی که حاضر هستن میگویند که ولید ابن مغیره 13 تا پسر داشت 13 تا پسر داشت که سه از اونها مسلمان شدند ده تا دیگه در حالت کفر مردند سه فرزندش خالد ابن ولید رضی الله تعالی او سیف الله خالد ابن ولید که رسول الله به او سیف الله گفت و دومی هشام ابن ولید و سومی ولید ابن ولید این سه نفر مسلمان شدند اما بقیه فرزندانش همه در حالت کفر مردند لذا الله می فرماید که این کسی که من برای او فرزندانی هم دادم که همه فرزندانش حاضرند و من حتی له تمهیده من محیا کردم آماده کردم برای چیزهای زیادی که آماده کردم یعنی جاه و مال و سر، سر، سروت و سرمایه خیلی بهش دادم این خدا بهش داده بود که از شمارش و حساب بالاتر بود الله می فرماند این انسان این همه بیش دادم ثم یطمع ان ازیدا سپس تمع دارد انتظار دارد که من بیشتر از این بدم نه الان که اون به سوی ایمان نیامد گرد شروع میشه کلا هرگز سنین نیست انه کان لایاتنا عنیدا همانا این انسان نسبت به آیات ما عناد است زد کرد گرفتار تعصب شد چونکه گرفتار زد و عناد و تعصب شد من در اون دنیا سعر و سعودا من او را به گردن بالا میبرم صعود سعود می گویند یک بالایی هست گردنی هست در جهنم وسط جهنم که از پایین تا بالا بری تو روایت ها هفتاد هزار سال طول میکشه تا اونجا برسی اونجا مجرمین بزرگ را گنده گنده را اونجا با شلاق میزنه میگه برو بالا لذا الله می فرماید سورهقهه سعود اون را بالا میبرم بر اون گردنه سعود بالا چرا این تفصیل انادش هست است انه کان لایاتنا این بیچاره نسبت به بی آیات ما اناد کرد از خود ضد نشان داد چیگونه؟ اینه فکر و قدر همانا اون نسبت به قرآن فکر کرد و سنجید یعنی با خودش چیزی را حد و اندازه عزت سنجید فقتل که قدر مرگ بر او کشتباد او بمیرد او این دعایی رب العالمین است کیف قدر چگونه بد سنجید ثم قتلہ کیف قدر قد سپس دوباره مرگ بر او دوباره لعنت بر او قتل را مرگ هم گفتن لعنت هم گفتن کیف قدر چگونه بد سنجید ثم نظرا سپس, سپس نگاه کرد ثم عبس و بصر سپس ابوس شد چهره اش ابوس شد و بصر ترش شد یعنی در هم هم شد چهرهش انسان وقتی که سرگردان بشه پریشان بشه که چیکار بکنم چهرهش متقایر میشه ثم ادبر واستكبر سپس پشت داد و تکبر کرد و قال ان هذا الا سحر يؤثر گفت این نیست مگر جادوی بود که يؤثر یعنی منتقل از گزشتگان نقل شده از جاهای دیگه این آورده شده این هادا الا قول البشر نیست این مگر قول بشر است این انسانی درست کرده اما جادوگری کرده به این خاطر تأثیر گزار است الله تعالی می فرماید سا سقر ان قریب من او را داخل می در جهنم سقر نامی از نام های جهنم است و این سعسلیه سقر تفصیل امون سأرهقه سعوده است وما ادراك ما سقر ميدون سقر چی لا تبقي ولا تذر لا تبقي یعنی هیچ چیز را باقی نمیگذارد و هیچ چیز را ترک نمی کند هر کسی که داخل جهنم بشه او ربهاله خود نمیذاره اون را ترک نمی کنه اون را مهمل نمیگذاره اون را میسوزاند اون را متأثر میکنه لووحت للبشر خدا پناه بده پوست را میکند پوست انسان را از بدن بیرو میکند و الله میفرمه علیها تسعة عشر بر اون جهنم نوزده تا هست بر اون چند تا هست؟ نوزده تا یعنی چه؟ یعنی نوزده تا فرشته یا یعنی نوزده تا لشکر الله عالم خداوند خودش می این عدد یک امتحانی هست نوزده تا هست و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه چند نکته نکته اول که کسانی که بر آتش جهنم هستن نیستند، مگر فرشتگان اونجا هستند. معمورین بر جهنم کیا هستند؟ فرشته هستند. شما اگر فکر کنید که خوب نوزده تا چه عددی هستند چون مشرکین همینه گفتن گفتن که این که چیزی نیست عددی نیست ما هزاران هستیم هر ده نفر مگه یکی را عریف نمیشه هر ده نفر نه هر 20 نفر یکی را میگیریم نگاه میداریم اون یکی از مشرکین بود از های مغرور و سرکش ابو الاشد ابن اسید جمحی یک کشتی و پهلوانی در میان قریشی ها بود اون گفت که هفده نفر را من تعهدشون قبول میکنم کنم به تنهایی تا را من میخوامونم میزنم به زمین شما جوانان قریش اینقدر جرات ندارید دو تا شما همه بگیرید اینکه کاری نداره خداوند در جوابشون فرمود اولا و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه اصحاب آتش نیستند مگر ملائکه هستند قدرت ملائکر انسان از اونجا متوجه میشه که جبرائیل امین 600 تا بال داره و تمام شهر صدوم را که قوم لوطون زندگی زندگی می میکرد با روستاهای اطراف با یک بالی بلند کرد یعنی این دنیا را با یک بالی میتونه زیر رو کنه چنین ملائکه شما اونها را حریف میشید اول وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه ما اصحاب نر را قرار ندادیم مگر ملک و فرشته قرار دادیم نکته دوم وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا این تعداد را ما قرار ندادیم مگر امتحانی برای کفار یعنی خداوند گاهی یک عددی ذکر میکنه یک مسلمان معتقد مثل شما میگید آمنه وسلمنا هرچی چی ربمون میگوید ما ایمان داریم، تسلیمیم، نمی دونیم چرا این عدد را گفته متشابهات هم حیثیتشون هم همین است. اینجا اعدادی که ذکر شده درباره از کنم عرش گفتم و احملو عرش رابی ک فوق قوم یوم ازین سمانیه بگیم بله هشت فرشته اون کیفیتشی الله بهتر میدن. اینجا هم نزدیکت هستند خدا که می فرمه نزدیکت ما میگیم ایمان داریم و ما جعل نعدت هم الا فتنه للذين اون تعداد را الله می فرماید ما قرار ندادیم مگر این باعث امتحان و فتنه برای کفار یعنی اونها فتنشون بیشتر چون مسخره میکنند استهزاء میکنند می خندند کفرشون بیشتر میشه اما خداوند می فرماید نکته سوم اینه که در این بین اهل کتاب که تورات خواندن انجیل خواندن می این عدد عددی هست که با کتاب های اونا هم خانی دارد این عدد عددی هست که با کتاب های انا هم چی دارد؟ هم خانی دارد چون در کتاب تورات و انجیل هم همین عدد آمده بود ببینید این عدد ولو اینکه تورات را دستکاری کرده بودند انجیل را دستکاری کرده بودند ولی فکرشو نرسیده بود که این عدد را جا کنند لذا هیچ یهودی در اون زمان اعتراض نکرد خیر تو کتاب ما نیست هیچ مسیحی هم اعتراض اونها هم متوجه شدند که این عدد نوزده بار عدد نوزدهی که در تورات و انجیل از دارد همه هنگی دارد لذا الله می فرماید لیستیقن الذین اوتو الكتاب نکته سوم اینه تاکی یقین کنند کسانی که کتاب داده شدند اونا یقین کنند که بلے عدد عدد درستی ہے خب اونا اون وقت می دونستن که محمد صلی علیه و سلم کسی که امی است کتاب نخانده، تاریخ نخانده تورات و انجیل در دستش نبوده اون کی این عدد را می حتما حتماً صاحب وحی هست وحی اوبا، وحی موسا و عیسی چی دارد؟ همه هنگی دارد ویزداد الذين آمنوا ایمانا و میافزاید در کسانی که ایمان برده ایمان را. یعنی مؤمنین میگویند که ما حقیقتش را نمی ولی الله میفرمادی نوزده ما هم ایمان داریم. اینکه اونها ایمان دارند ایمانشون چی میشه اضافه میشه. ولا یرتاب الذين آوت الكتاب والمؤمنون و شک نمی کنند کسانی که کتاب داده شدن و هم چنین چون اهل کتاب تو کتاب خودشون می بینند مؤمنان دیگه در قرآن می بینند اما منافقان ولی يقول الذين في قلوبهم مرض کسانی که در دلشون مرض هست مثل منافق والکافرون کافران مثل قریش مکه اونا میگه ماذا اراد الله به هر در مسئله با این وصف با این صفت با این مسئله چی ارادهی داره چرا نوزده تا خب اون درک نمیکنن این بحث الان شاید برای شما هم این سوال بشه که چرا نوزده این مباحث مربوط به عالم غیب هستند عالم آخرت مربوط به جایی که هنوز من و شما نرفتیم وقتی که در کلام وحی هست ما هم چی میشیم؟ تسلیم میشی میشیم میگیم ایمان داریم لذا الله میفرمايت وليقول الذين في قلوبهم مرض تا اینکه میگویند عاقبت این میگهویند کسانی که در دلشون نفاق است والکافرون وامچرن کافران میگویند ماذا اراد الله بهذا مثلا چه اراده ای خداون خداوند از این وصف از این عدد کزایکه یو الله من یشان و من یشان الله خداوند کسی را که بخاد و هدایت میکوند کسی را که به همین مسائل همین اعداد همین که مربوط به عالم غیب هستند قمرامی کوند خداوند که بخان کسانی بول ندارن باور ندارن میخواند با این عقل کچلوی گنجشکی مطابقت داشته باشه لذا آنها گمراه میشن و یهدی من یشا کسانی که به وحی ایمان دارن به قرآن باور دارند. اما در آخر خداوان میفرماید و ما یعلم جنود ربک الا ہو جنود ربت را لشکریان پروردگار را اون عددشون را جمعیتشون را هیچ که نمیدونه جز الله الان خدا میدونه فرشتگان عددشون چی اندازه هست که هزاران هستن، میلیون ها هستن، ملیارد ها بالاتر از میلیارد، تلیارد چیه خلاصه اون عدد را الله بهتر میدونه ده. ولی از بعضی از روایت ها معلوم میشه خیلی زیاد هستند از این عقل و درک ما بیشتر وما هي الا ذكر للبشر اما ان ذکر جهنم کی انجا آمد این مگر پندی هست برای بشر انسان باید پند بگیره لذا الله عزوجل می فرماید کلا والقمر کلا شیخ رحمه الله می فرماید به معنی بعضی گفتن که این کلا رد است یعنی هرگز این تور نیست که خیامت را انکار کنید نمیتونید انکار کنید یعنی هرگز سینی نیست اما شیخ میفرمه بمعنی حقا هست کلا ردعیه نیست یعنی بمعنی یقین است کلا حقا قسم به ماه و اللیل اذ ادبر قسم به شب وقتی که پشت میدهد و صبح اذا اسفر قسم به صبح وقتی که روشن میشه ببینید خداوند فقط به روشنی ها و به نور قسم خورده و القمر قمر نور هست و اللیل ایز ادبر شب وقتی پشت بده چی میشه صبح میشه سپیده صبح مرادست نا و اللیل ایز ادبر معنیش هست والفجر شب که پشت بره بره چی میاد فجر میاد پس به اون سپیده صبح خدا قسم خورده و صبح اذا اصفر به صبح وقتی که روشن میشه انها لا احدل کبر همانا آن جهنم لا احدل کبر یکی از بزرگترین مسائل انذار است بیم دادن است یکی از بزرگترین ها هست اون جهنم را خدا به عنوان یک انذار بزرگی در قرآن ذکر کرده به خاطر چی؟ نذیرا للبشر برای ترسندن بشر لمن شاء منكم این يتقدم او یتأخر کدوم بشر هر کسی که میخواد از شما این یتقدم جلوبید إلى الاسلام او یتأخر یا اغب نشینی بکنه بزوی کفر هر کی می خاط کل نفس بما كسبت رهينه هر نفسی هر نفس مشرکی بخاطر آن که کسب کرده گرفتار است گرفتار است گروه است در جهنم الا اصحاب اليمين یعنی هر کسی که عقب نشینی میکنه گرفتار تو جهنم الا اصحاب اليمين اما اصحاب اليمين انهایی که دست راستی هستند قبلا خاندی تو سوره واقعہ اصحاب الیمن کسانی که پروندیشون به دست راست هستن فی جنات يتسائلون در بهشت از همدیگه سوال میکنن عن المجرمین ما سلكکم فی سقر از مجرمین میپرسند که شمار چی چه چیزی در جهنم برد جهنم داخل کرد ببینید کیفیت سوال را خدای تعالی بیان نفرموده اما ما گاهی یک سری قیاسای دنیوی میکنیم چون بعضی سال میکنند چطور این تو بهشت اون تو جهنم اینها از هم دیگه سوال میکنند با هم دیگه صحبت میکنند از آیات مختلف معلوم میشه که بهشتی ها در جایگاهی هستند که کاملا اشراف دارند بر جهنمی ها کاملا میبینند الان فاصله زیاده ولی راحت صحبت میشه مثالش مثل اینه که شما اینجا نشستید یک آغای در تهران هست شما از طریق این امکانات جدیدی که فراهم شده از کنم که گوشی ها هست یا دوربین ها هست طریق اینترنت هست راحت تصویری با هم دیگه صحبت هم را می بینید می خندید مشاهده می کنید لذا اونجا الان مسائل دیگه حل چطور اهل جهنم حتی در آیات دیگر انشاءاللہ میخانیم در سوره صافات که بعضی از بهشتی ها میگن یک کسی بود مارا همیشه مسخره میکرد اون کجاست ببینید نگاه میکن اون وسط جهنمه بعد بایش صحبت میکنند یادت هست چی میگفتی تو دنیا لذا مکالمه اهل بهشت و اهل جهنم راحته اینها اونجا همچینین چکار می کنند؟ از اون مجرمین سوال می کنند یا تسائلون عن المجرمین اصحاب الیمین که در بهشت استن می از مجرمین ما سلککم فی سقر چه چیزی شما را در جهنم داخل کرد؟ اونها جواب میده. قالو لم نکو من المسلین ما نماز نمی خاندین مظهر ابدیتی نماز است فرق بین کفر و ایمان چیه نماز است نماز نمی خاندیم یعنی بندگی خدا نمی کردیم ولم نكن اطعم المسکین تعام نمی دادیم و ما تام نمیدادیم به مسکین خدای عزوجل از همه عبادات این دو تا رو برجستگی کرده چون این دو تا عبادت خیلی مهم است نماز در دنیا خیلی مهم است ان اهم امورکم الصلاه مهمترین امور شما در دنیا نماز است و بعد از نماز به بینواها به مساکین به بیچارها رسیدگی کردن هم خیلی مهم است در این رابطه هم کتایی نکنید اونها همین میگفتند ولم نکن نطعی مل اما ببین این به خاطر این در نماز و در صدق دادن کوتاهی کرده تنها این تا نبود این بر اساس یک سری اقایدی بود چون ایمان نداشت و چون قیامت را قبول نداشت نماز نمیخاند یعنی کافر بوده وقتی که انسان کافر باشد این کافر خودش یک بدبختی بزرگ هست که با خدا خودش را دشمن میکنه. اما یکی از بزرگترین بدبختی های کفر و اهل کفر اینه که اینها از نماز محروم می شوند از همدردی با زعفا و فقرا محروم میشوند. شوند لذا میگوید: و کنان خود معل خائدین همانا ما وارد می با وارد شوند شوندگان کسانی که تو بحث های کفر تو بحث های خرافی تو بحث های شرکی داخل می شدن ما هم با انها بودیم یعنی همراه می شدیم هر روز بر علیه اسلام بحث می کردیم و کنان نکذب بیوم الدین و بودیم تکذیب می کردیم روز جزاره می گفتیم کی گفته قیامت این همه بسخره هستند قبول نداریم قبول نداشتیم حتی اتانا یقین حتی که مرگ پیش ما آمد ببین مرگ ایک چیزی هست که اسمش هست یقین چون مرگ را هیچ کسی منکر نیست خیلی ها منکر قیامت اند ولی مرگ را قبول دارند خیلی ها منکر رسول الله هستند ولی مرگ را قبول دارند بسیاری هستند حتی خدا را قبول ندارند اما مرگ را قبول دارند چون مرگ چیزی است که هیچ که در اون شک ندارد اسمش یقین یکی از نماهای مرگ چیه یقین حتی اتانل یقین چون یقینی است تو هیچ شکی وجود نداره لذا مرگ احمد و ما مردیم لذا به خاطر اون عقاید و اون اعمال ما به جهنم افتادیم الله می فرماید فما تنفعهم شفاعت الشافعين شفاعت سفارش کنندگان و شفاعت کنندگان هیچ نفعی به نمیدهد فما لهم عن التذكره معرضين علت اصلی و مرض اصلی اینه که خدا ذکر میفرم مال مشرکین چه شده اینها را از پند اعراض کننده هستند پند چیه تذکره چیه همین قرآن هست قرآن هم تذکره پند هم بلیت بهشته لذا از این پند و اندرز چرا اینها چی هستند اعراض می و چنان از قرآن فرار می کنند و می خداوند تشبیه جالبی داده که انهم حمر و مستنفره فرت من قصوره. گویا اینها اولاغ وحشی هستند، اولاغ وحشی به اصطلاح گورخر اگر ندیدید تو فیلم ها دیدید که وقتی که غورش شیر را میشنود چنان فرار میکند، چنان میگوریزد که پشت گوشش را هم نمیبیند، لذا که حمر و مستنفره گویا اینها اولاغ وحشی هستن که فرت من قصور قصور میگه آواز شیر غرش شیر را که فرار میکند از غرش شیر یعنی چنا فرار هم چنین از قرآن و زمزمی قرآن و تلاوت قرآن فرار میکنند یعنی اعراض میکنند دوری میکنند بزرگترین دشمنشون قرآن است. و بعضی ها را خدا این طور امروزه گمرک کرده که قرآن را دست میگیره میگه ما هرچی بعد بختی داریم از زمین قرآن است بسیاری از کفار یهود نصره ارزیکنم اینها همینها هستند که از قرآن میگوریزن بل یویدو کل ام منهم آن یوتا صحوفا از قرآن میگوییزان است اما هر یکی دلش میخواد که بهش داده بشه سهیفی رساله‌ای نامی که برای او کشیده بشه مخصوص او باشه، انتظار داری که برایش وای هم بیاد. کلا هرگز سنی نیست، بللا یخافون ال بلکه اینها نمی‌ترسن از آخرت چون به آخرت اعتقاد و ایمان ندارن. کلا انه تذکر حقه همانا این قرآن پندی هست دوباره را پند میگه این پندیه هست موعزی هست فمن شاء ذکره هر کسی میخواهد این پند را بگیرد از این پند حاصل بکند وما یذکرون الا ان یشاء الله و یاد نمی پند نمی از این قرآن مگر اینکه خدا بخواهد هو اهل التقوى و اهل المغفره خداوند اهل التقوی هست اهل التقوی هس یعنی چه؟ یعنی خداوند اهلیت و صلاحیت این را دارد که از او بترسیم هو اهل ان تقامن منه اهل چی هست این است که نه اینکه خدای عزوجل بگیم بلا نسبت بگیم که متقی است پرهیزگار است نه هو اهل تقوا به اهل ان یتقا منه اهل این است که باید ازو او بترسیم وقتی که از او بترسیم وأهل المقتلاء وقت أهل بخششس ما رمي بخششة أهل الطقوة تفسير الشرع لما قالوسيب بنقله حديث بيان فرمودكين هذا الحديث در سنن الترمذيه ودر سنن النسائيه ابن ماجهس عن أناس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية انا سمی فرماید رسول الله در باره این آیه فرمود قد قال ربكم انا اهل ان اتقا رب فرموده من اهل این هستم که از من بترسید فلا يجعل معی الهن وقتی که از من بترسید دیگه با من معبود دیگری قرار نمیدهید فمن اتقانی فلم يجعل معی الهن آخر هرکس از من ترسید و با من شریکی نساخت معبود دیگر را در کنار من قرار نداد فانا اهل ان اغفر له من اهل این هستم که او را ببخشم من اهل این هستم که او را ببخشم پس هو اهل التقوى و اهل المغفره ولی سوره مبارکه مدثر که حاوی مطالب بسیار زیبای هم درباره قرآن و هم درباره مخالفین قرآن بخانده شد و در این سوره الله عزوجل در واقع فرمود که تنها قرآن را نخانید و ردت للقرآن ترتیلا خودتون نخانید بلکه این قرآن را برای دیگران هم بخانید قم فانذر بلند شو و به وسیله این قرآن انذار کن مردم را بیم بده مطالب این قرآن را برای مردم بیان کن